بسم الله الرحمن الرحیم خب انشاءالله که وقتتون رو در اختیار حقیق گذاشتید سودمند باشه مفید باشه تلف نشه مورد رضایت انشاءالله حضرت وقیعت الله قرار بگیری یک سلوات بفرگید اللهم صلی علی محمد حضور محمد عجید حضرت ابتدای چند نکته رو به عنوان مقدمه ارز میکنم بعد وارد خود حدیث خانه میشه ماشه نکته اول این است که حدیث چقدر مهمه و حدیث خانه چقدر اهمیت داره اگر ما به اهمیت حدیث خانه آگاهی داشته باشیم خب انگیزهمون بیشتر میشه حضور در کلاس ما میشه بولونی یک درس فرعی جنبی بهش نگاه نمیکنیم بولونی یک کار اصلی یک طلبه بهش نمی‌کنم یه توضیحی رو من در قالب یک جدول arz بکنم خب این جدولی که مشاهده می‌فرمایید جدول اون چیزه که در اسلامشناسی اثر بزاره هست و معلفه های ایجاد کننده توان استنباط و توان اسلام شناسی به شمار میره یعنی یک شخصی که بخواد اسلامشناس بشه مجتهد بشه مستنبت بشه باید این جدول رو بکنه. خانه های این جدول رو در وجود خودش پر بکنه مثلا ادبیات عربی رو یاد بگیره مبانی قرآنی رو دانش‌های حدیثی رو و تا شماره ده خب نکته که وجود داره این هست که حالا یه مقدار ریزش رو توضیح خواهم دادیم نکته که وجود داره این هست که هر کدام از اینها یک درجه اهمیتی داره همشون در یک سطح نیستن از حیث حجم ممکنه یک خانهی در این جدول نیاز داشته باشه که ما پنج سال وقت عمر علمی من رو بگذاریم برای اینکه که بشیم در اون زمینه. ولی ممکنه یک خانه برای پر کردن 6 ماه شما وقت بگذارید که پاید ما در این قسمت درصد نسبت اینجا نوشتیم که این موضوع و این دانش و این مؤلفه چند درصد از صد درصد توان استنباطی رو که نیاز هست رو شکل میده مثلا ادبیات عربی با همه شاخاش 24 درصد توان استنباط رو در انسان شکل میده که شاقهاش هم سرف و نحف و اینها هست من اینا را هم ریز در رو در آوردم ممکنه شما بگید که خب این از کجا محلوم مثلا 24 هست مثلا 25 نیست یا 23 نیست. اینا مثلا سلیغهی نظر شما اینه مثلا ممکنه یک استاد دیگری نظرش طور دیگری باشه بله تشخیص شخصی در تعیین این درست ها دخالت داشته ولی این نکته رو ارز می‌کنم که ما تلاش زیادی کردیم که از یک افق کلام به همه موضوعات به شکل یکسان نگاه کنیم و این درست ها رو تعیین کنیم یعنی تلاش زیادی شده که این درست ها نزدیک به واقعیت باشه ممکنه یه نفر در یک رشته در یک موضوعی بیشتر کار کرده علاقه هست به او درصد بیشتری بیده ما سعی کردیم که بدون جانبداری باشه و به همه این موضوعات به شکل یک نواخ نگاه بشه فکر میکنیم این درصد ها به واقعیته حالا ممکنه دو سه درصد بالا پایین تصور بشه ولی ما فکر میکنیم نزدیک به واقعیته و خیلی دور از واقعا نباید باشه ادبیات عربی، صرف و و بلاغت و لغت و تاریخ ادبیات اینا ریز درس درصد اینجا هست. مبانی قرآنی 4 درصد. مبانی قرآنی خیلی مهمه ولی از حیث حجم، حجم یاد فراگیری خیلی حجم بالایی نداره و این ریز شاخا رو میشه در یه مدت کتاهی یاد گرفت س... چی؟ یعنی یک کسی که میخواد اسلام شناس بشه خب با آیات روبرو میشه با یه روایات روبرو میشه بعضی از روایات ناظره به آیات صحبت میکنن جزء مبانی قرآنی این هست که این نسبت بین آیات و روایات رو ا برا، برای خود حل کرده باشید اینا تقریر رو تقریر لازم بشه که مناسبات قرآن و سنت یعنی قرآن چه جای داره سنت چکار میخواد بکنه اگر یه روایتی اومد مثلا گفت این آیه اصلا یه چیز دیگه میگه که اصلا ظهور آیه این نیست اینجا مبنای شما چیه اصلا دیگه ارتباطی به بحث ما نداره و من ورود نمیکنم 23 درصد های حدیثی هشت درصد فقه نه درصد اصول فقه پنج درصد تاریخ اسلام یعنی یک طلبه میاد اسلام شناس میشه ولی آگاهی از تاریخ نداره من یه جایی بودم بچه های خارج بودن چند سال خارج گفتم مهمترین منبع تاریخ پیامبر چه کتابیه که نگفت همه ساکت بودن گفتم سیره ابن هشام و اصلا نشدید اسمشو گفتن نه <متحد> یعنی مهمترین کتاب سیره پیامبر رو اصلا اسمش هم نشیده بود چه رسد به اینکه بره تحقیق کنه مطالعه کنه مثلا اینکه شما می‌خواید صحیفه نور امام رو کار کنی محتوا ازش در بیارید که مثلا نظر امام در این موضوع چیه اصلا هیچ اطلاعی از تاریخ قیام امام زندگی علمیش اصلا اطلاعات نداشته باشید. نمیشه که شما حرفای یک شخص رو زمانی میتونید برداشته سعی ازش داشته باشید که آگاهی داشته باشید این شخص کی بوده؟ کجا بوده؟ تو چه محیطی بوده؟ حالا نوبت جغرافیای تاریخی میرسه تو چه محیطی بوده؟ مثلا همین حرفای پریشه به حضرت آقا رو 20 سال بعد حرفای پریشه به حضرت آقا رو پخش کنه همه انتظاری برداشت میکنن خب این درست نیست ما باید بیان بگیم که 20 سال قبل حضرت آقا چند روز بعد از جنگ در یه شرایطی که کشور این شرایط رو داشت این حرفا رو زد ناظر به این محیط و این فضا و قرائن این میشه چی؟ میشه جغرافیه تاریخی حدیث، فهم حدیث بدون اطلاع از جغرافیه تاریخی بدون اطلاع از فضای صدوش و قرائن محیطی حتما ناقص خواهد بود کلام یا عقاید هفت درصد، سه درصد اخلاق اسلامی هشت درصد هم موارت های کاروردی مثلا جستجو رو باید طلبه بلد باشه نرم افسارها رو باشه آشنا باشه نحوه نحوه بله بله بفرمیم نحوه یاد تاشنیمیسی... خروجی در آوردن از مطالبی رو باید یاد بگیره خب این جدول رو من توضیح دادم. قبلاً به شما نشون ندادم این جدول را این جدول ببینید این است که بهتون نشون دادم این جدولی که الان اینجا هست اه. یه خانه های سبزه. یه خانه های قرمزه خانه های سبز خانه است که در حوزه بر ما به شکل رسمی آموزش داده میشه آموزش بله و خانه های قرمز خانههایی است که به شکل رسمی آموزش و وزوی درش وجود نداره البته ممکنه گوش و کنار یک استاد چهار طلبه جمع بشن با یک استاد اینا رو کار کنن منظور بنده این هست که این موارد قرمز رو اسم شریفتون عزیز. عزیز. عزیزی این موارد قرم ببین این جدوری هست که نشونتون دادم. در اینجا یه سری خانه ها رو سبز کردم و یه سری خانه ها رو قرمز. خانه های سبز خانه‌هایی است که در حوزه به شکل رسمی آموزش داده میشه. یعنی از این موارد این چند خانه که سبز شده آموزش داده میشه. و خانهای های قرمز یعنی در حوزه آموزش رسمی نمیشه حالا ممکنه یه نفر با علاقه شخصی بده یه استادی رو یه گوش پیدا اونا رو من کار ندادم به شکل رسمی مثلا ل... ببینید مثلا لغت آموزش جدی و رسمی داده نمیشه البته اخیرا یه حرکت شده ولی من ناظر به اه... کلیت حوزه و اه... هستم و اگر فعالیتی تو این دو سه سال اخیر صورت کرده که من اطلاع ندارم اون دیگه توی ملازیه بنده مد نظر نبوده ملازیه می که اصلا دانش‌های حدیثی به طلبه یاد داده نمیشه و تاریخ و جغرافی ها اینا که دیگه اصلا مگه حدیث بله مگر اینکه یه نفر یه رشته حدیث رو به حضور داشته باشه اون دیگه شکل عمومی نداره خب پس من این دوتا جدول رو برای این آوردم که بگم یک انصر و ای با اهمیت 23 درصد تقریبا نزدیک به یک چهارم توان استنباط یک فقیق و رو دانش های شکل میده و آموزش رسمی عمومی در حوزه براش وجود نداره خب نتیجه چه بگیریم نتیجه این هست که طلب خودش باید این انگیزه رو داشته باشه دنبال کنه این رو بره دنبال اینها و اینا رو در خودش ایجاد باید. کنه و این توانایی رو در خودش ایجاد کنه خب یه جدول دیگری رو نشون بدم ما در کتا... کلاس حدیث خانه چه خواهیم کرد این برنامه جلسات ما خواهد بود البته به شکل کاملا خلاصه و گزرا چون هر کدوم از اینا رو بخواییم مفصل ورود بکنیم که در طول سال شاید یکی دو تا حدیث رو بتونیم کامل کار کنیم نه ما سعی خواهیم کرد که در هر جلسه ای دو تا حدیث رو بخونیم دو تا تا بخونیم و به این مراحل هم اشاره ای خواهیم کرد بعضی وقت پررنگ بعضی وقت کم رنگ دیگه به حسب اون مواردی که صلاح ببینیم اینا رو کم رنگ و پررنگ خواهیم کرد خب یک <تصفح> حدیثی رو که وقتی ما مثلا ملازم می این 5 تا کار رو باید روش صورت بدیم یک مسترشناسی و طرق حدیث یعنی این حدیث رو ما از کجا آوردیم؟ از کتاب شریف کافی مثلا خب اینشون از کجا آورده؟ ممکن شما بگید که خب اینشون اولین کتابیه که این آورده نه اینطور نیست ابتدای تاریخ حدیث با کتاب کافی شروع نمیشه کتاب کافی سر سفره نشستی که سالها 300 سال این سفره باز بوده نزدیک به 300 سال و ایشون از منابع ایشون رو میز خودش کتابهای گذاشته احادیث رو از این کتابها نوشته شده کافی اون کتابها به دست ما نرسیده درسته به دست ما نرسیده ولی قابل تشخیصه ما میتونیم بگیم که کافی از کتاب مثلا جامعه بزنتی مثلا این حدیث رو برده یا از کتاب ابن عبی اومیر یا حسین ابن سعید جدیدا تو این 20 سال اخیر تلاش های صورت گرفته که منابع کتاب کافی استخراج بشه جزو کارهای باکلاس و سطح بالا از جهت لبه مرز دانش حدیث هست. یعنی هرکی بیاد تو این زمینه مثلا تلاشی بکنه یه مقاله یه حرکتی بکنه میگن آه این چقدر بروزه و دانشمنده در موضوع حدیثی هست اخیران هم کتابی چاپ شده منابع کافی به اسم آقای محمود ملکی من همین کمتر از یک سال اخیر باش آشنا شدم و این کتاب رو تهیه کردم فرصت مطالعش رو نداشتم ولی احتمالا نقص هایی هم داشته باشه ولی خود موضوع که بهش پرداخته موضوع مهمه. پس ما و زمانی آقای عزیزی به یک حدیث ما میخوایم به پردازیم باید ببینیم این آقای کللی حدیث از کی گرفته اگر از بزنتی گرفته بزنتی از کی گرفته تا به اون اولین کتابی که از امام تلاقی کرده حدیث رو و در اونجا ثبت کرده باید این رو برسیم این چه فایدهی داره فایدهش رو بعدا ارز خواهم کرد تو اعتبار سنجی تاثیر داره تو نحوه نگاه ما به حدیث تاثیر داره یه نکته تلاعی ارز کنم بعدها توضیح خواهم داد در روی کردهای اعتبار سنجی که شماره 5 هست روی کردهای مختلفی وجود داره یک روی کرد روی کرد رجالی هست در رویکرد کرد رجالی میگن فلانی ام فلانی ام فلانی تا به امام برسه هر کدوم رو مستقل آی عزیزی بررسی میکنم میگن این توسیخ شده نجاشی گفته سقه یا نگفته توصی گفته سقه یا نگفته اگه گفته که میشه سقه اگه نگفته میرن تو توصیقات عمومی زیله چه قاعدی در بیاریم که یه توصیقی جور کنیم براش حدیث رو نجات بدیم بشه صحیح مثلا اگه توصیقات عام هم و اون قواد عام رجالی هم کفاف نکرد و ای نکرد، حدیث میشه ضعیف. یعنی در نگاه رجالی نکته مهمیه دقت بفهمید در نگاه رجالی همه شخصیت ها به نحوه یکسان نگاه میشه فلانی ام فلانی هر کدومشون یکسان مستقل نگاه میشه ولی در تحلیل فهرستی که, که یک روی کرده دیگری از اعتبار سنجی هست یا در تحلیل های تجمیه قرائنی که مبنای حقیر هست و مبنای قدما بوده در اینجا میگن که ببینید کلینی با یک یا دو واسطه از بزنتی گرفته این وسطی ها علی ابن ابراهیم و پدرش اینا کیان؟ اینا ناقل حدیث هم. بزنتی کیه؟ صاحب میراس حدیثه پس این دو نفر رو نگاه ناقل حدیث بهش میشه بزنتی که با سه واسطه کلینی ازش حدیث رو اخذ کرده بهش نگاه صاحب میراث حدیثی میشه فایدهش چیه تو در اعتبار سنجی فایدهش است که این ناقل ها این واسطه ها اگه ضعیف هم باشن سقه توصیق نداشته باشن ایرادی نداره به خاطر اینکه که توصیق و تضعیف های کتاب های فهرستی ناظر به صاحبان کتب بوده یعنی مثلا ابو سمینه یک کسی که میگن ضعیفه. ضعیفیه یعنی کتابهای خودش رو ما مطمئن نیستیم که از انحرافات در امام بوده باشه ولی اومده کتاب مثلا احمد ابن محمد بن ایسا رو اجازه داده به نفر بعد اجازه شو میپذیرن در عرف دانشمندان اسلامی مثل اینه که مثل اینه که مثل اینه که ببینید شما بگید که من به آی مرعشی نجفی خیلی ارادت دارم از طریق فلان مجتهد که یه مشکل سیاسی داره یه مشکل انحرافی داره از طریق ایشون اجازه آی مرعشی رو دارم من این رو می‌پذیرم اجازه کتاب های مرعشی رو یعنی این رو بعدن توضیح میدم که کتاب های حدیثی در بستر اجازه اعتبار پیدا کرده یعنی اگه کسی رسا تو خیابون یک کتاب حدیثی پیدا میکرد یعنی اجازه نهل نداشت باید از نویسندش ولو با واسطه اجازه میگرف این رو بعدن الان بیشتر توضیح میدم ولی همه آقای از انقلاب منحرف کزاری اگه خودش کتاب نوشته باشه بهش نگاه نمیکنن اگر فرمودید چون اون انحرافش در اجازه دخالتی نداره. اجازه رو و... یعنی مگر اینکه دقت بفر مگر اینکه یه سری راویان دیگه حالا نمی‌خواستم رو بحث کنم ولی بس آمد یه سری افرادی هستن که حتی اجازه هم اعتبار نداره یعنی انقدر اه... چیزم باید ازشون فرار کرد که حتی اجازه شنان این افراد خیلی کمن از افراد زعیفی در میراس حدیثی ما شاید انگوش شمار باشن ح... چنین افرادی که حتی اجازه حدیثی شنان به درد نمیخورد ولی 92 خورده درصد از افراد که حتی زعیف هستن اینا زعیف هستن در محتوی کتاب های خودشون یعنی این رو بهش میگن توصیق و تضعیف های کتاب فهرستی مثل کتاب نجاشی و کتاب شیخ توسی ناظر به صاحبان میراس هست یعنی تضعیف یعنی کتاب خودش به درد نمیخوره نه اینکه اجازه کتاب دیگری رو یعنی انقدر دیگه طرف متعفن و خبیص و پلید و اینا نیست که حتی اجازه شم تو شک بکنی مثل خیلی از علمه که الان زد انقلاب ولی طرف میگه که من از علامه ای رو شنیدم آدم باور میکنه یعنی درست منحرفه ولی اینقدر یه آلوده نیست که مثلا اصلا جملاتش هم همش شک کنی که اینا دروغ میگه نه دروغ نمیگه درست میگه واقعا اجازه داره از آلم قبلی ولی تو افکارش تو برداشتاش انحراف حراف داره لذا خودش رو اعتنان نمی کردن قومی ها حالایش حدیث مربوط به دوره قوم هست ولی اجازات پذیرفته می شد مگر یه درصد کمی که حتی اجازاتش پذیرفته نمی شد این رو مرور اگر قسمت میشه کلاس شکل بگیره اشاره خواهیم کرد پس ما مسترش شناسی خواهیم داشتی انشالله یعنی ریشه این حدیث رو در خواهیم آورد که این حدیث از کجا آمده؟ کی گفت کلینی گفت از کجا گفت از فیلان ایشون از کجا گفت یعنی تا این شجره اینو در نیاریم که نمیشه که باید ببینیم این حدیث چه سیری رو چه تاریخی رو گذارنده و به دست ما رسیده رسید. دو راوی شناسی بحث شماره یک بحث کتاب شناسی بود بحث شماره دو راوی شناسی یعنی تک تک افراد رو ببینیم چه کسانی هستند و توصیق و تضعیف شخصی در مورد این شخص صورت گرفته یا نه؟ اما از, از, از ناقلین تراست و صاحبین تراست بله؟ اگر روکرده رجالی داشته باشیم آه. اگر روکرده رجالی هم نداشته باشیم باید شناخت داشته باشیم که این... برای اینکه برسیم به اینکه این ناقله باید شناخ داشته باشیم مثلا ابراهیم نهاشم همیشه ناقل حدیث بوده صحابه حدیث نیست برای اینکه به این برسیم خب باید مطالعات شخصیتی داشته باشیم که اینشون کجا بوده؟ از کوفه اومده قوم نقل کرده کتابای کوفه رو به قومی ها بشناسیم چیکاره بوده؟ در چه, نافل سالی نافل در چه سالی استادش سال کی بود؟ شاگرداش، مشایقش، روباتون انهش کی بودن؟ آره. ولی اعتبار سنجی رو اگه بر این اساس قرار بدیم میشه روکرد کرده رجالی بر این اساس قرار ندیم بر اساس کتاب شناسی قرار بدیم یا تجمیع قرارینی اون وقت میشه رو غیر رجالی دار بودشی؟ دار بودشی؟ کتاب یعنی کلینی الان رومیزش کتاب کیه؟ رو میزش کتاب بزنتیه ولی به بزنت کتاب بزنتی از طریق علی ابن ابراهیم و او از پدرش اجازه داره بهش اجازه نه هم داره خود بزنتی تو زمان حالا میتونه باشه میتونه منبع اولیه تو زمان محصوم باشه میتونه نباشه میتونه کسی باشه تو زمان محصوم نباشه آره میتونه مثلا شیخ توصی از کتاب شیخ صدوق منبع قرار داده استفاده کرده در کتاب های حدیثی خودش تحصیب اینا یکی از منابعش مثلا فقیه یا مثلا سفار اینا همه بعد از احمه بودن حالا باید ببینیم فقیه از که گرفته سد... آره صاحب کتاب احم از این است که در زمان احمه باشه البته بیشتر صاحبان کتاب منابع اصلی در زمان احمه بودن ولی ارزامی به این نیست خود کولینی هم تو نجاشی توصیحاته دیگره خود کولینی مطفل شده تو نجاشی دیگره نجاشی خود کولینی چون سابقیتا دیگره نجاشی اومده اصلا مطفل کرده حالا اینا من باعث نظریه بریم تو احادیث در خاله به تطبیق بیشتر اه... با صحبت می‌کنیم. موضوع سوم ثومت چناسی میتونید حدیث بزنید منظورم از شناسی چیه؟ رانمایم کردیم شناسی یعنی این یعنی این حدیثی که در کافی هست این رو در بهار هم ذکر کرده خب بهار چی رفتی به کافی داره؟ بهار که مال به دورهای متاخره چه فایده ای داره؟ ما به بهار نگاه کنیم چه فایده ای داره؟ از این رو تو بهار میبینیم فار نیست یعنی تو کافیه که ما جلومون هست واو اونجا فا